حکایت بالین تربت یهیا پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامعه دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز دعا کرد و حاجت خواست. درویش و قنی بنده این خاک درند. وانان که غنیترند ترند، محتاج ترند. آنگه مرا گفت، از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنید، که از دشمنی سعب، اندیشناکم، گفتمش، بر رئیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. به بازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجی مسکین ناتوان بشکست نترسد آنکه که بروفتادگان نبخشاید که گرز پای دراید کسش نگیرد دست هر که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ بیهوده پختو پخت و خیال باتل بست ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده وگر تو می ندهی داد روز دادی هست بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به در داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بی قمی نشاید که نامت نهند آدمی.